حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روزه بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی با چشم دل بازیم با ارش دل ببندیم از که دل به دیدی توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نشوکه سبز سبزت دیدی توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم حالا احولتون چطوره؟ اینجا رادیو پسورده 975 امروز یک شنبه 11 بهمن 1394 هم با شماییم و میبینم که همه منتظرین و بر های این ور تو استودیو هم همه آمادن و شهرام و سامی و علی و سعید و جلال و برو بریم برو برو چه خبر؟ خوبی خوشی؟ سلامتی این چیکارا میکنی؟ ما هم هستیم دیگه بعد نیستیم دیگه این هفته همطور که خب میدونیم موضوع من در مورد زورگویی و قلداری و این هاست دیروز در مورد قلداری های خونگی و زورگویی در کانون گرم خانواده حرف زدیم امروز میخوایم سریع به محیط های آموزشی بزنیم گشت البته تو محیط های کاری بزنیم از رئیس بازی ها وقللدر معابی های ها و همکارا ها بگیم مراتون اما از اونجا که خاطرات دوران مدرسه. برای خیلی از ماه ها خب با ترس از سال بالاایی و با دووا و کل, کل و بیرون باستادن زنگ آقد جو در مدرسه و این چیزا گرفت خورده میخوایم همین اول برنامه سلام مخصوص بکنیم خدمت همه کلاس پنجمی های عزیست که پای ثابت کابوس شب های کلاس اولی ها و کلاس دوممی ها قایم کلاس دوممیا بودن و یک سلام ویژ هم کنیم خدمت همه اون مبسر های هیچلداری که وقتی معلم نبود از ترس اینکه اسمت داره تو لیست بد و زبون همل ضبط دارم هم بخوره نمریزه آببدنه تو سی کلاس غرت بدی. یادش به واقعا چه دورانی بود فشی. جان دفتر عکس سر خودته بابا این چه با... کاریه میکنی؟ دیگه... عوضش کن آخ از من ما تحملشو با... نداریم ای بابا دیگه ببین ما به خاطر شما ببین چه کارهایی که نمیکنیم دیگه یعنی دیگه این کلا این فصل آخری من خودم رو گذاشتم در طبق اخلاص بذار بز بزه پرچمند فدای خنده های این مردم بشه به قول شاعر پس گردن ما و آستان حضرت دوست این صحبت ها و اینا خیلی ممنونم از تماس شما اما خاال ماقا های دختقال ماقع به سر توجه بفرمایید مسئله مهمه از اونجا که موضوع داغ این روزها مسئله رد صلیت های انتخاباتی و عملکرد سلیقه ای شورای نگهبان صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی و نه میلی هستیم گرفت که به این ئله توجهشون بده بره میون مردم ببینه واقعا مردم چی انتظاری از شورای نگهبان دارن و تعدادی مصاحبه به صورت رندوم یاون اتفاقی با مردم انجام داد اینجوری. دقت لازم رو شورای به عمل بیاره که یه وقت افرادی که دارای صلاحیت کافی نیستن به این مقاله راه پیدا بله خب ایشون به هر حال بوده که شورای نگهبان باید حواسش باشه که کسی که صلاحیت نداره توی انتخابات شرکت داده نشه بالاخره نظرشون بوده محترمه دیگه نفر بعدی اونا مد بعد نظر داشته باشن که آدم صالح توی مجلس چه جالب ایشون هم نگرانیشون این بود که یه وقت آدم ناساله‌ای از زیر دست شورای نگهبان در نره که مردم بتونن بهش رأی بدن خدای نکرده بره مجلس بل ببینیم نفر بعد چی میگه حتما عدالت رو رعایت بکنه و نهایت دقت رو داشته باشه برای اینکه کسانی که وارد مجلس میشن تعیین کننده خیلی از قوانینی هستن که زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده فناवर این دین بزرگی بهگردننش خواهد بود اگر دقتی در این مسئله نداشته بشت. ای بابا ایشون هم که معتقد شورای نگهبان مدیون مردم میشه اگه اشتباهی کسی رو تایید صلاحیت کنه من نمیدونم چرا هیچ نگران این نیست که کسی به شکل اشتباه رد صلاحیت نشه همه از اونوری نگرانند که کسی اشتباهی تایید صلاحیت بشه حالا رو گوش کنیم که صلاحیتش واقعا داشته باشن خب از این دیگه که فهمیدیم همه مردم یک صدا نه تنها با رد صلاحیتا هیچ مشکلی ندارن و وطان نگران هم نیستن که کسی به اشتباه رد صلاحیت نشه بلکه تنها چیزی هم که از شورای محترم نگهبان میخوان اینه که کسی اشتباهی کسی رو تایید صلاحیت نکنه چون مردم خودشون میدونن که عقل و حواس درست حسابی ندارن و ممکنه یه مهر بی‌صلاحیتی مثلا تایید بشه بعد مردم مثلا غر گور برن معمجون به اون رأی بدن طرفش نماینده مجلس نماینده مثلا خبرگان باز بریم بگین مردم با رد صلاحیتا مشکل دارن اینا اینم مردم دیگه چی میخوان سلام فرجی جون محمود هستم از سیدنی با گرمای 30 درجه و گاهی اوقات تا 40 درجه او او او با شما صحبت می کنم فکرشو بکن هفته دیگه دارم میام چین یه شهری به نام من منهای 15 درجه است منهای 15 فکرشو بکن البته دارم برای سال نو چینی ها میرم که خیلی هم خوش میگذره جای همتون خالی بوس بوس بوس, بوس بوس آقا از گرما چل درجه میخوای بری منفی 15 و نکن این کار رو با خود ترک میخوری یه دفعه قربون شکلت بعد سال نو چینی رو خود چینیام دیگه حالا انقدر جدی نمیگرن که تو انقد جدی گرفتی از استرالیا میخوای پاش بری چین حالا یه, یه ما چند هفته دیگه سال نو خودمونه دیگه اون موقع پاش ایران به خدا انقد خوبه یه آقای محسن رضایی رو که به هر حال همه می‌شناسین آقای محسن رضایی میرقائدم داره دیگه آخره فامیلیشون آقای محسن رضایی میرقائد ایاتون باشه گفته بودن بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 دیگه برای هیچ انتخاباتی کاندید نمیشه اما خب نگفته بود که در مورد هیچ انتخاباتی نظرم دیگه نمیده که اینه که ایشون دیروز در جمع خبرنگاران با یه حساب کتاب سرنگچتی که ما البته زیاد ازش سردنهی بردیم چه جوری شد که اینجوری شد به شایعات مبنی بر رد سلاحیت گسترده اصلاح و از دوشاره نگهبان اینجوری پایان دادن الان و اندازه کافی از همه گروه هست اونطور که به من اطلاع دادن اصلاح طلبات دو برابر و نیم کرسی های مجلس الان نه. تو نامزدها افراد دارن. اصولگره ها تقریبا سبرابر دارن و مستقل ها هم برابر نامزد برای سبرابر کرسی های مجلس نامزد دارن یعنی مخادم سوت می ها رسمن طبق فرمایشات آقای میرغاید حدودن باید مثلا 700 نفر اصلاح طلب تاید شده باشن برای مجلس و از اون برم حدود 800 نفر اصولگره در که واقعیت اینه که قبلا هم گفتیم تو برنامه فقط سی نفر اصلاح طلب تونستن از فیلتر شده نگهبان رد بشن این که جناب رضایی با چه مکانیزمی تونسته سی تا اصلاح طلب که شده نگهبان بهشون لطف کرده و تایید صلاحیت فرمانده رو برسونه به 700 تا واقعا یه مؤماست ما بگه تحریف و تغییر و دستکاری توی اعداد و این چیزها رو به حال قبلا ما تو فرمایشات بزرگان نظام یغه‌گداری دیده بودیم این دیگه واقعا فراتر از این حرفا یه ژانر دیگه اصلا محسوب میشه برای خودش تنها چیزی که میشه تصور کرد اینه که ایشون کلا اصولگرایهای میانه رو و حتی اصولگرایهای اصولگرایی اصول که سابقه یغه گیری و گتک و از دیوار سفارت بالا رفتن و این چیزا نداشتن اینا هم همراه اصلاح طلب فرض فقط اون اصولگرایهای خیلی تندرو و آتشین مثل آقای رسایی کوچکزاد و اینا رو به حساب آوردن به حال ما که دیگه اقلمون به همین همین قد دیگه فقط قد میده بس فرشید جون سلام سلام خیلی علیکم فرشید جون سلام خیلی مخلص دو نفری اگه کلکل کل آب و هواست اینجا هوا منفی پونزده درجه ای like منفی بیست و سه درجه است و اینجا هممون دفعه می‌ریزیم فریز شدیم آره خیلی چاکریم ام ام خیلی چاکریم خدافظ خدافظ خوشحالی داره فریز شدن چقدر خوشحالین شما خیلی ممنونم این چه بامزه این دوستمون از سید نمیخواست بره چین مثل که چینی‌ها شنیدن چینی‌ها هم تماس گرفتن گفت از 40 درجه میخوام برم منفی 15 درجه بعد خدمت این دوست عزیزم بگم که منفی 15 درجه اسمشه فریز لایک منفی 23 درجه ترکه رو خوردید عزیزمم تم شد راد اما بعد از یک دوره سرمایه استخونسوز از دیروز دوباره هوا کمی گرمتر شده تا آخر هفته در بیشتر منطق ایران شاهده افزایش دما هستیم ایشاله برای آخر هفته هوای ملس و همچنین نیمه بهاری داریم یه چیز جالبی هم که امروز ما کشف کردیم بعد نیست بهتون بگم هفته گذشته ما در مورد این برفی که توی استان گیلان و به خصوص رشت و اطرافش اومد خیلی تذکر دادیم و گفتیم و اینها گفتیم 60 سانتی، 80 سانتی متر اینو می‌خواد برف بیاد خوشبختانه خوب این برف سنگین خسارت و تلفاتی نداشت ولی اتفاق خیلی جالبی که افتاد اینه که توی تصاویر ماهواره‌ای استان گیلان رو که بری نگاه کنی از سمت رشت و انزلی و به قول معروف کنار دریا زمین یه دست سفید پوشه در حالی که توی باقی نقاط استان گیلان و از رشت که مثلا دور میشیم اینجوری نیست همه چی سبز بده میشه خیلی بامزه است اینم نشون دنده حجم برفی بود که به خصوص رشت و اطرافش رو سفید پوش کرد جالب بود که به حال بگیم بهتون شما هم بدونی سلام که جوال رادیو فردا؟ سلام خال خواهش دارم این پیام رو به خب اینجا ابودان 5 متر برف اومده کار ما نفس <تصفح> ندونیم می‌دیم برف بکشیم ما اعتراض داریم حداقل برف رو توی مسئول خوب قرار بدن بعد چند روز اسکی واسه ما ابودانیا بزنن خب چی مون برذیم چند کار من نونشون <تصفح> ممنونم یعنی نیست ما توی این خب چند تا برنامه آخر همش از برف و سرما و کل مثلا سرد شدن و این چیزا دیگه صحبت کردیم دیگه دوستان آبادانی دلشون تا قد ورد دیگه فدای شما پیست اسکی هم چشم میگیم ایشالا که صدای شما به گوش مسئولین میرسه پیست اسکی هم براتون را میندازن صداتون رو پخش کردیم که مسئولین بیان دیگه رسیدگی کنن دیگه این ترانم تقدیم به همه و بچه ها ها چنه خوب جانم ستر دانم عاشق رئی بون سا دل حتم گان اند که آبی شبمون بیا اشتفتیه وای نو مثل گل وقتی بی رخصت مالو اون ایرا بلندش قومونت بود بودو توی ستانک تاک موندن اونجای بام کنار شرط کولم بریم سراغ زورگویی و قلدوری در جامعه از قلدوربازی کف حیات مدرسه تا را باز جاده دراسای محیط کار با شماره 975 بدانید و آگاه باشید که زورگویی یک جاده یک طرفه نیست که کسی در آن همین جور چپ و راست زور بگوید و جلو برود بلکه در جامعه همیشه کسانی هستند که از ما هم زورگوترند و باز هم کسانی هستند که از آنها هم زورگوترترند با این وجود هیچ تزمینی هم وجود ندارد که اگر ما به کسی در جامعه زور نگوییم کسی هم به ما زور نگوید و این ماجرای زورگویی خیلی پیچیده است و ما برای پرداختن به آن از بسیار زور زنندگانیم امضا از فرط زور زدن کبووت شده های برای هر گونه زور گفتن خودشان از همه آماده های رادیو پس فرد دا دادا دا دا, دا, دا, دا. هفته به ما بگین تا حالا کسی بهتون زور گفته یا خودتون مثلا تا حالا با قلدوربازی و زورگویی جایی کار خودتون رو پیش بردین چه میدونم مثلا تو مدرسه کسی رو گوشمالی دادین مالی دادین زورکی تو صف زدین توی محل برای کسی مثلا گردن کلوفتی کردین شاخ خوشونه کشیدین کلا این هفته بهمون از خاطرات زور گفتن ها و زور شنفتن هاتون بگید اگه بهتون زور... کسی زور گفته حالا مثلا چه میدونم میخواد تو خونه باشه یا توی مدرسه یا سر کار یا گیر زورگیر مثلا اگه افتادین یا گیر پلیس یا گشت ارشاد برامون بگید الان فرش جمع. ببین مستاق بازه زورگویی واسه ما زن چیه؟ ببرمیشید. فشار برادرای ارشاد در مورد آه آه مسئله حجاب. اونقدر با ما مهربون منطقه برخورد کردن که حتی وقتی از ایران خارجم میشیم تا دو سه روز تا یه پلیس یا حتی سکیوریتی میبینیم تو توهم بحث حجاب میاد وای روسری سری به؟ خلاصه ببین چه راحت خارج از مرزای اختیارشون هم که باشیم هرچی چی میپوشیم و هر جا میریم و به کاممون ترخ میکنن. راست میگیم والله راست می. اینو من خیلی از شنیدم، خیلی مشکلی دارن. یعنی قشنگ یه واحد گشت ارشاد در... یعنی باید گرشترشتاد در درونمون هم مستقر کردن خودمون خبر نداریم بله مورد داشتیم طرف تو هموم داشتی دوش میگرفته شده درونش حتی بهش تذکر داده در این حد یعنی خب برابطش ها الیو سعیی چه خبر از کامنت ها برامون بگیم علیه. سلام حفظ. سلام علیکم علیه. سلام. علیه. سلام. آقا سعید چطوری خوبی سکوتی هنوز یا نه دیگه سکوتت چیکون تمرین, تمرین سکوت کن سکوت, سکوت تو باشی چه خبر بگی خب آقای امیر یوسفی در فیسبوک کامنت دادن که اون اثری که دمپایی مامانم روی آدم شدن من گذشت تحریم‌های آمریکا رو مردم ما نذاشت البته هنوزم آدم نشدم خب امیر خان تکلیف ما رو معلوم کن اگه تاثیر دمپاییش خوب بوده که پس چطور بالا نصف هنوز آدم نشدین اگه تأثیری هم نداشته که خب چی پس ولی <تصفيق> مرسی یاداوری خوبی بود بالاخره همه همونی همچی خاطرات شیرینی داریم دیگه <تصفيق> بله از دمپایی مامان دادیم همه همون دیگه اینستاگرام چه خبر؟ فول اسکای در اینستاگرام کامنت دادن که دست رودلمون دل اون که خونه با زور خانواده و با جیب خالی رفتم خاستگاری ننه بابام گفتن برو جلو زن بگیر ما کمکت میکنیم آه. منم به زور اونا زنگ گرفتم و الان زدن زیرش. آخرش هم امضا کرده امضا جمعی از عجب غلطی کرده زیر بار زور رفته های آخرش هم ازو داشته تو مجردی سفر آنتالیا رفته های الانم شاپ دل ازیم نمیتونن رونده های رادیو پس کردن آره بعد من پیشنهادم بهشون بش اینه که واسه آنتالیا زیاد نگران نباشن بالاخره ماموریت کاری چیزی میتونن جور بکنن برن ما میایم ما بر بچا ما میریزیم میریم همه خانم شوکا در اینستاگرام نوشتن که یه مدل زورگویی هم داریم که میشه بهش گفت گردن کلوفتی آتفی یعنی خودتو بزنی به ننه من بازی تا طرف حرفتو گوش کنه <تصفح> <تصفح> خیلی خوب بود شوکار جون ممنوع گردن کلوفتی عاطفی خیلی خوب بچه همه بلد هم بکنن. فکر کنن بود قدیما بیشتر خانم ها از این شیبه استفاده ام هم که همه الان هم آقایون بس که همه گوی سبقت به دست هم ده هنوز خانمات به نظرم سرتران در تو بازم هست؟ آره دو نفر آقای صفتر اسمایلی و پینجی ایران دوتا کامنت مشابه دادن به این مضمون که صاحب کارهای عزیز خیلی به کارمندان خودشون زور میگن مثل فرشید خان ایه و, ایه و, ایه و فرشید یه ذره زورگویی های خودت به شهرام و سامی تعریف کن اینو تو میگی یا کامنته نه این کامنته البته <تصفح> تو, تو این زمین من بخوام حرفی بزنم میگم که چون این خیلی حساسه و یه جورایی منوهلی هم شامل میشه دیگه ترجیح میدم بیشو شیوه خودم سکوت کردم بله با کردم باشه خیلی <تصفيق> با خودت فرخ خیلی خوب دارم براتون حال می‌کنین ها از زرگوی های فرشت بگین ببینین ببینین ببینی از این تلفن رو یاد بگیرین ببینین چی یعنی دوست داشتنی ترین زورگو دیکتاتور جهانی با کل که میگه همینه که حق سکوت حال کردین حال کردین من که کرده. کرده شهرام دلش خونه من خیلی ممنون مرسی علی سعید خب بریم از راه ارتباطی براتون بگم پسوردات رادیو فردا ایمیل ما سعی خواستید با ما در تماس باشید و ایمیل بزنید 23420 این شماره وایبر واتسپ و تلگرام ما در کانال تلگرامی ما میتونید جوین بشید اپلیکیشن راژیو رو میتونید دانلود بکنید اونایی که سیستم آمل آی دارن روی آی و یا روی آیفون و تلفن‌های های ما هم دو سف 420, 22, 11, 24, 130, و بیست و دو که از داخل ایران تماس میگیرن دو سف و بیست ودود دلم تانکی به هر جا که برم من آسمون همین رنگه ای آسمون کبود مگه من چه کردم که دلم ز دو میبنه نشواد راهو یکدا ای آسمون کبود مگه من چه کردم که دلم ز دو میبنه نشواد راهو دلم چه خواهد قلبش چومن از از به یک اشاره از من به سر دویده ای آن که در راه تو از جان و سر بزشتم از کوچه تو شب، با تر بزشتم ای آسمون که بود مگه من چه بد کردم که دلم زدا می بلا نشود رهای مگه کردم رهای تو دوران مدرسه که از ترسناک ترین جملاتی که ممکن بود بشنویم این بود که زنگ آخر وایسو جلو در چرا ترسناک بود چون این جمله معمولا از دهن ترسناک ترین موجودات مدرسه یعنی کلاس بالایی‌ها سال بالایی ها بیرون می اومد یا کسانی که به دلایل ژنتیکی دست کم 30 تا کیلو از مو سنگینتر و دو سرگردان هم بلندتر بودن و حالا به هر دلیلی تصمیم گرفته بودن اقتدار خودشونو به ما نشون بدن دیگه گردن کلفتی کنن اینجور جور مواقع ما چند تا گزینه پیش رومون داشتیم یکی اینکه زنگ آخر بریم مثل مرد جلو در وایسیم اون دوست محترمم اون دوست گولاخ محترم تشریف بیارن در حضور تماشاگرانی که برای تماشای کتک خوردن ما شده بودن چند تا فن زیبایی کشتی کش رو پیاده کنه و درس عبرتی بر بقیه بشیم یکی دیگه هم این بود که کلن بپیچونیم فرار کنیم در بریم مثلا نف نبینیم این غ... اون دم در و اینا رو نباشیم مثلا اون ساعت اونجا حالا یا یه ساعت زودتر از جو دیوار مدرسه فرار کنیم یا بعد از اینکه زنگ خود بمونیم تو مدرسه به بابای مدرسه کمک کنیم کلاس ها رو تمیز کنه حال توی اون دوران و در چنین موقعیت های هر تصمیمی که می‌گرفتیم کلا شخصیت و طرز فکر ما رو برای تمام زندگی و در همه ابعاد شکل میداد حالا ما که اگه دقت کرده باشی تو همه این مثالا نقش کتک خور و زورشنوی ماجره رو پیش پیش همچه باز خودمون برداشتیم دیگه اما بالاخره بوده من باره دیگم که برحال ما هم زدیم و زور گفتیم و اینا حالا ما میگیم زدیم شما هم بگیم زدن جای دوری نمیده که حالا اول من هرچی قلدوربازی بازی تو مدرسه دیدم یا معلم و نازم مسئولش بودن یا بچهای گنده تر و بزرگتر مدرسه هیچ هم یاد نگرفتم چطوری خودم جواب قلدور بدم کلاس چهارم دبستان یه دختری درشت هیکلی داشتیم تو کلاس گیتی قلدوری بود بر خودش کافی بود از یکی خوشش نیاد روزگارشو سیا کرد دفتر مشختو پاره میکرد مغنتو تو جر میداد میخورد داری به معلم بگو تا به حسابت برسن. یبر من بچگی کردم رو معلم گفتم زنگ تفریح شد چون کتکی از گیتی خوردم که منم فکر کردم مامانم ببرم مدرسه بالاخره بزرگتر زورش میرسه با مامان که رفتیم تو دفتر مدرسه دیدم یکی از خانم نازما که همیشه تو حیات مدرسه داره سر بچا داد میزنه اونجاست بعد هم اومد جلو خودش رو مامانم اینجور معرفی کرد که مامان گیتی هیچ دیگه کلا ایام مدرسه بر من با سایه ترس از قلدربازیای گیتی گذشت رازش همین الانم میترسم یخ بشنوه اینا رو بیاد پیدام کنه کتاک مفصلی بخورم من همینجا اعلام میکنم که با همه این حرفا گیتی دوست خیلی خوب منه اصلا هم نیست و به قول صدی صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چود تو فرزند بزاید مهبه مهبه به شرمی شیگو؟ در مامو بازدور بدنیو، امادین زورکی هم داریم خودمون رو تو این دنیا جا میکنیم. چرا؟ این حرفو دامه همیشه بابام با همدردی دانشکشان برنامه شام داشتند دوازده کش. و به من بعد باخ که میرسی، وقتی با همدردی دنبالشون میرفتیم بیرون انتظارشون ساعت پنج بعد از چون شام کوف کنیم ساعت شششانی من با یه بچکن خودمون از رستوران برویم خونه. اساساً پدر من برابری و دموکراسی رو ساده میکنه. شاباره هم از کانادا. شوبرک جان خب ببین قدیم فرق داشته دیگه اون قدیم بوده این ساعت دوازده یک شب قدیم مدل همون 566 و نیم عصر شماس دیگه یعنی عصر الان دیگه نمیشه خیلی مقایسه کرد حق بدین دیگه حق بدین به پدری گرامی اما داشتیم از دوران مدرسه می گفتیم تو دوران مدرسه خیلی وقتا می شد با کمی تدبیر و نرمش قهرمانانه کاری کرد که کار به زنگ آخر و وای سادن جل در کشیده نشه برای این کار چند تا روش وجود داشت یکیش نزدیک شدن دوستی با گلدورا و گولاخای مدرسه بود اصولاً وقتی راه فراری نیست خب بهترین کار اینه به ترین کاریه که به چسب خود طرف و در دوستی و رفاقت و ارات و اینا وارد بشی دیگه مثلا شما میتونستی توی خونه از مادرتون خواهش کنی که بهجا یک ساندویچ دو تا بلکه کمسه چهار تا ساندویچ براتون درست کنه موقع زنگ تفریق قبل ازی که ایشون بیاد سراغتون شما خودتون برید سراغش و ساندویچ ها رو با عق تقدیم کنیم یا اینکه مثلا قبل از امتحان خودتون داوطلبانه خدمتشون برسیین ازش بخواین که موقع امتحان اجازه بده کنارش بشینین جواب رو بهش برسونین دیگه اینجوری اب شرطشین بود درستون خوب باشه و یعنی خودتون در بهترین حالت مثلا نمره دو سه میگرفتین میرفتین این پیشنهادها میدادین که بعد از اعلام نتایج کلا بعد مدرستون رو عوض میکردین حال دنبال یه گولاخ را افتادن تو مدرسه به مراتب بهتر از فرار کردن از دستشون بود دیگه یعنی دوره که اینجوری بود الان رو دیگه, دیگه نمیدونم بری غریب، سلام چه خبر سلام سلام به همه گیر، به همه شنمندگان و همه همکاران محترم فرشی جان از خبر تصفبار تصادف سارا عبدالملکی عضو تیم ملی رایدی زنان ایران باید شروع کنم که بعد جو راستی دیده و الان تو بیمارستانه عجب. شبکه خبر سیما بحلی یک گزارش پخش کرد تو این مورد در این مورد که خانم مریم ابو ترابی، مادر سارا تو این گزارش از مسئولان و از مردم دو تا درخواست داشته که اگه معافقی حرفای ایشون یعنی مادر سارای مسئول رو بشنبید, بشنبید. من فقط از مسئولین تنها درخواستی که دارم که به من یک پذیرش یک بیمارستان دولتی بدن چون خدا شاهده ما خانواده کارگری هستیم واقعا این هزینه ها واسم سنگینه یه چیزی هم از مردم میخوام تو شبکه های اجتماعی ببینید گوشی من اینه من نه فیسبوک بلدم نه نمیدونم این استانگرام بلدم هیت تلگرام بلدم هیچی بلد نیستم تو شبکه های اجتماع به حساب اینا واریز شده بیایید پیر این پیرین تا رو شما نگاه کنید ای بابا ما متاسفیم از این ماجره و از اون بدتر این شایات فضای مجازی که تو این حال و اوزا برحال خانواده خانم سارا عبد الملکیه که برحال بستری هم اصلا تو بیمارستان خیلی ماجره رو خیلی بدتر میکنه ولی بارز مگه ورزشکاره اه. ملی پوش بیمه نیستن فاش جان باید باشن قاعدتا و هستن یادم کلی تو سالای گذشته حتی اون موقعی که خود من تو ایران بودم راجع به این قضیه بحث بود که بشنو شدن اما اونطوری که مادر سارا عبدالملکی به شبکه خبر تو این مصاحبه گفته از خزینه های بیمارستان باید این مخارج رو خودشون پرداخت کنند عجب ما از راه دور برای سارا دختر ملی پوش راگبی ایران آرزوی سلامتی و بازگشت مجدد به میادین می‌کنیم بریم سراغ فوتبال از فوتبال چه خبرفری برس امروز ترسید یه خبر اومده که آقای محمد مایلی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار شده اوه، دوباره به کیروش گیرداده؟ <تصفيق> نه این بار نه اونطوری که سایت تابناک نوشته به خاطر مصاحبه با بی بی سی اوه. آقای مایلی در هاشیه واضحه های آره تو قطر اگه یادت باشه اونجا بوده با تیم ملی امید ام، یه مصاحبه کرده با بی بی سی بعد از بازگشت به ایران هم حتی گفته دلش برای خبرنگاران این رسانه سوخته که تو سرما و گرما کلی زحمت میکشن و البته ماهیلی که قبلا هم اعلام کرده بودن من از آهنگای داریوش خوشم میاد دیگه کسی به کارشون کاری به کارشون ندوش این هم دیگه مصادبه بی بی سی هم همونجوری دیگه آره به نظر میاد فرشید که ایشون کاملا مستمع آزاد سهلن تو مملکت یه بساتی داریم قرار دو ست روز دیگه که میاد بیاد اون موقع دیگه یه شرقی بپنیش دعواد بکش بکش داریم اتنبال الان تو همین برنامه راجبش حرف میزنیم ممنونم ازت فری عزیز با تخدافزی میکنم تا فردا تا فردا خدا نگهدار دار I want Let me be your air Let me roam your body freely No inhibition, no fear How deep is your love? Is it like the ocean? با سلام بي سي كهسي يك شام شب را ضمن تعجب از تصميم شورای نگهبان برای مصاحبه با داوطلبام رد صلاحیت شده نمایندهگی مجلس با مرور بر سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. بازداشت 60 کارمند دولت به اتهام زمینخاری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 و نظر کارشناسان که دلش قرارداد نفتی تو قرارگاه سپاه و پایگاه بسیج و اینا میشه چه برسه به خیابون؟ سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب میبابشند. اینک مشروح خبرها با همکارم بوی بوی. با سلام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 ای آقا این میکروفون طلا یعنی واقعا احتمال داره همچین حرفای زده باشنیشون من چی میدونم بلبل من. من تو جیب عبای حسن خمینی بودم که بدونم حرفای خب پس چرا شما اینجوری مینویسید این چش... کار مسطاق تشویش از خان عمومی آقای میکروفون طلا ولی دلت خوش تو بلبل ما آخرش نفهمیدیم این از خانمون میتره انقدر داغونن هر کاری بکنی تشویش میشه بی خیال بابا بل, بل, بل, بل برو به دکترت برس برو وا چرا من هرچی میگم شما هی پای دکتر رو میکشین وسط های میکروفون تلا های کیو بکشم وسط بل بول تو نکنه که فایل کسی دیگه یه هم اره. همیشه پاوی یک مرد دیگر در می آمده است دیریم نه بابای آره. چی میگین شما منظور اینه که این بحثایی که ما میکنیم اینجا خیلی حرفهی و سخصصی رفتیم به دکتر نداره شما همی کشینش وسط آه تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم خب میخوای نرو به دکتورت نرس حسن بری واقعا یک بار نشد من یه انتقاد از شما بکنم نه. شما آدمان پشیمون نکنید من رفتم <تصفيق> شب خوش بری با بری شب خوشی <تصفيق> میخوایید میگم بری ولی به دکتورت نرس یا میشه نری ولی به دکتورت برسید دیگه نمیدونم هر کار دلت مفرد بکنید شش سال پیش در چنین روزهایی مصادف با نهم بهمن 1358 هجری شمسی نتایج اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام و ابوالحسن بنی صدر با کسب 76 درصد از آرای مخوبزه به عنوان اولین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب انتخاب شد مورخین معتقدند کسب آرای بالاتر از 70 درصد اصولا برای کاندیداهای ریاست جمهوری شگون ندارد چندی پس از اخس این میزان از آرا، بنی صدر با استعانت از هنر گریم و آرایش از کشور گریخت. عکس محمد خاتمی در حال حاضر فقط با استفاده از هنر فوتوشاپ قابل چاپ در مطبوعات است. و البته فقط این سید علی خامنهی بود که با کسب آرای بالاتر از 70 درصد در انتخابات ریاست جمهوری انقدر کارش درست تشخیص داده شد که تا کسب مقام معظم لهی هم، تخت گاز پیش رفت. دست سلام علیکم ما یه مدت گورن شدیم اومدیم امریکا می‌بینی اینجا حالمون خوب نیست واقعاً حالم خوب نیست از خانواده خوب. اصرار از من انکار که آقا من میخوام برگردم اونا میگن نه بمون بمون آقا بمون اونجا خوب میشه میگم آقا من تنها نه بمون میگم من حالم بده نه بمون میگم آقا رویم خرابه نه بمون زورگویی تا کجا خب برادر من پدرم ب... عزیز من میگم حالا بمون دیگه حالا به خاطر ما بمون آمریکا به جان تو اولش سخته ها یه سال بمونی عادت میکنی خانواتت هم بلاخره حق دارن از وقت شما رفتی آمریکا تاز دارن یه نفسی میکشن بنده های خدا گناه دارن آقا بمون من به نظرم بمون بمون آقا شما بمون آمان آمریکا بمون اه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 ولی خب یه برال یه دلیل ناراحت بودن اونا شاید این بوده که یه هو از دیسکو اومدن بیرون چشمشون افتاده خب به جمال آجاقا پناهیان و اصلا یه کسیم گیریپاچ کردن رسمن یا شاید مثلا یه وقت چون داشتن میرفتن بعد اون داشتن به حال اون شب به حال دیسکو بازیشون تموم شده بوده آخر شب بوده از این ناراحت بودن که دیگه تموم شده اخر شبه اینا رو از این نظر میگم خیلی بعیده کسی بره دیسکو افسورده بیاد بیرون اصلا من نمیدونم چه چیزی امکان نداره اینه که ما توصیهمون به اینه که دفعه بعد که رفتن خارج دیسکو ها رو دید بزنن اولا سر روان هستن مردم میخوان رد شدن خب بعدم اینکه دیسکوشون رو عوض کنن شاید اصلا اون دیسکویی که رفته بودن فازش کلا تریپ بوده یه مدل هست مثلا یه ممکنه باشه دیگه والا. در ضمن آقا پنایان در ادامه سخنانشون به بحث شیرین حرام بودن گوشت خوک پرداختن و دلیل این ماجرا رو خیلی رک و پوسکنده برامون گفتن که ما تا حالا نمیدونستیم این، اینه واقعا گوشت خوک صفت بیغیرتی رو به انسان منتقل میکنه بله الان توجه کنید من براتون باز میکنم این ماجرا رو ببینید مثلا الان شما برید یه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 آره. یا خ... خدا خیلی خوب صدای غیرت گاوه نر بودا دیدین چه میکنه غیرتش حالا خدا رو شد که شرایط به حال آزمایشگاهی بود و اینا نه الان همه آقا گاوه ظرافرمانانه سنبش بود رو پیکر چاک چاکی شما داشت عکس یادگاری می‌گرفت اما همین آزمایشو شما برید تو خوکدونی بکنید.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 خیلی اح... واقعا حق واجق پناهیان بود ما خوشحالیم که با دوتا آزمایش تونستیم صحت فرمایش ایشونو به شما ثابت کنیم به هر حال کاشیم بگیم حمچی آدمای اهل آزمایشی هستیم ما دل نگرانی ما از خود آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشند امران ملک سلام چه خبرها از جشواره سلام. چه خبره؟ مراسم افتتاحیه برگزار شد بالاخره. مراسم ساعت هفت تو وحدت و شروع شد مجری اصلی برنامه احسان کرمی هنوز جریان داره مراسم دو تا سیمرغ بلورین بهترین آنوس و بهترین تیزر به مصطفی امیدی یوسفی برای خواب ترح تعلق گرفت امیر یوسفی وقتی جایزشو گرفت گفت من موزل امیر یوسفی هست چه بوثه <تصفح> و متاسفم که تو دولت تدبیر و امیدم به فیلم آشغالهای دوست داشتنی همچنان جفها شد سیمرغ بلورین بهترین پوستر به مهدی باقری رسید برای فیلم من میخوام شاه بشم همینطور محمد بدرلو هم سیماغ بهترین عکاسی فیلم گرفت برای اعترافات ذهن خطرناک من اما فرسی جان روز اول جشواره از پنج تا فیلم تو کاخ جشواره به نمایش در میاد خیابان خیابان یک طرف ساخه مهدی باقری برداشت دوم از قضیه اول پویان باقرزاده گیتا مسعود مددی نقطه کور مهدی گلستانه و نیمه شب اتفاق افتاد تینا پاکربانه بسیار خوب ممنون ازد این ماجرای سالار عقیلی راسی به کجا رسید کارش کامران هم؟ ایران؟ آره عقیلی دیشب در سکوت خبری برگشت ایران ولی مثلا اینکه مشکلی نیست امروز عزت الله رئیس سابق سازمان ادساسی تو اینستاگرامش نوشت عقیلی به موسیقی متحد انقلابی کشور اینقدر خدمت کرده که اشتباهش قابل اغمازه حسین نوش هم سخنگوی ارشاد اعلام کرد عقیلی با دیگران تفاوت داره چون دلبستگیش به نظام و انقلاب بر کسی پوشیده نیست و بخشیده شده عزب. فردا هم قرار آلبوم جدید سالار عقیلی به اسم قصه باران منتشر بشه که ماجره ها کلن به خیر شد دفعه کارش بسیار خوب خیلی خوب با شنیدن بخشی از آهنگ حس خوب زندگی با صدای سالارا عقیلی باید خدافزی می‌کنیم تا فردا کامرون عزیز بلاته با عرضی حرد شدن مشکل همه عقیلی از جمله مرتضی عقیلی هوشمند عقیلی شد مهر عقیلینا همه از <تصفح> تا فردا خود نگه خرمانت خدافر. از خانهت بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن بیذره حس گنا. از دست غندوی ها و بی احترامی های کلاس پنجمی ها لبتان به جانتان یعنی چیز جانتان به لبتان رسیده است؟ آیا کلاس پنجامی ها ساندویچتان را که مدر گرامیتان با دحمت و خون دل برایتان درست نموده است از شما میگیرند و کفت می آیا از حمل کیف و سایر تجهیزات و ادوات جانبی ایشان در مسیر مدرسه و انجام دادن تکالیف به جای ایشان خسته شده اید دیگر نگران نباشید. مرکز مشاوره و آموزشی نوواوه طلامی مستقر در کلاس سوم جیم طبقه دوم در خدمت شما میباشد ما در این مرکز به شما یک سری فن و تکنیک آموزش می دهیم که به توانی با سالبالایی های بیتربیت برخورد قهرمانانه به نماقید دوله های رزمی ما شامل زرب زدن به نقاط حساس یک کلاس پنجامی تیراندازی با لول خودکار و نخت زنی پقلید صدای برسلی برای ایجاد رکب و بخشت در دل سالبالایی ها و در نهایت اگر اینها جواب نداد ما به شما بالا رفتن از دیوار درخت گیر برق میره پرچم نست شده در حیات و هر چیز دراز و بلند دیگر و تکنیک های ماندن در ارتفاع برای مدت نامعلوم را آموزش میدهیم همچنین شما میتوانید با استفاده از تکنیک ساندویچ خود را قورت بده کلاس پنجمی های سیری نپذیر را که برای گرفتن ساندویچ مادر گرامیتان دوره نمودند، ناکام نمودند او جای و او جای بوس، አልپنی همه. سلام همه معظملو آفتم همه خوردم بابا این باکتری عقب دیگه زورد میگن دیگه معظم لگ گفت همین گفت نه دیگه تو چی میگی دیگه ناموست میگه بله خدا بعد نداله ان شاء الله خوب میشین دیگه باکتریه حالا دیگه زور بگی یه روز دو روزی هفته میخواد مقاومت میکنی آخرش باکتری بی خیال میشه تموم میشه معظم لهو نمیدونیم کجا دلمون بذاریم اونو بی خیال اونو منم صبرم اما توی محیط‌های کاری گلدربازی و زورگویی مدل‌های مختلفی داره یکی از سنتی‌ترین نقشال زرگویی کاری زرگویی رئیس به کارکنانشه حالا البته بسته به کاری که انجام میشه رئیس میتونه اوسا باشه دکتر باشه یا مهندس باشه به هر حال فرم زورگویی هم فرق میکنه با توجه به این عناوین مثلا اگه رئیس اوستا باشه زورگوییش میتونه اینجوری باشه که کارگر بیچاره مجبور کنه طنای سه تا ماشین مازرا با بیل آروز زمین جمع کنه بلیز تو بار کامیون اعتراضم بکنه میگه همینه که از راباط جاده دراز کارگگرم فراوون اگه رئیس دکتر باشه میتونه به شما پروژه‌ای رو موعول کنه که رسما هر کدومشون کار یه شرکت گندند اعتراضم که کنی میگه این میخوای کار یاد بگیری باید از این کارا بکنی تا یاد بگیری اگرم نمیخوای راباط جاده دراز اگه رئیس مهندس باشه میتونه از شما یه برنامه کامپیوتری بخواد که الان مثلا تو خود آی بی و گوگل و فلان و همه اینا نتونسته باشن از پس نوشتنش اعتراضم بازم جواب چیه راباز جاده چی دراز نتیجه میگیریم توی محیط های کار اصولا زرگوی که کار میکنند یکی از بدترین نوع زرگوی هاست تو ایران چون اگه اعتراض کنی چی میگم بهت؟ راباز جاده چی؟ بله دراز <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> زرگو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 امروز با روزنامه افکار امروز تیتر زده بود که آمار بالای شکستگی فک و صورت در ایران از اثرات پسابرجامه نیست دیگه خب یه مدت برحال برادران مشت محکم به دهن آمریکا نمیزنن اینه که تا عادتش از سرشین بیفتال مشغول مردم شدن دیگه روزنامه رسالت به نقل از آیت الله هایری شیرازی امروز تیتر زده بود که رهبری به هیچ شخص و گروه خاصی تعلق ندارد بله این اشخاص و گروه ها هستند که به رهبری تعلق دارند این وسط هم مال ممکنه معظمله یه شخص یا گروهی رو نخواد مال خودشه نمیخواد زوره والا سب دیگم تموم شد و یه پسفردوی دیگه کاش من و تو یادمون باشه که گاهی میش امیدها رو تو یه کل پشتی گذاشت و را افتاد که گاهی رسیدن اون قدرها مهم نیست که خود رفتن شاعر میگه بیا و در خیلی همه آنها که مندند تو پا به راه بگذار بیا خستگی هامان را جا بگذاریم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 تاریکی فشارده کولی کنار آتش رقص شبالت کو شادی چرا رمیده آتش چرا فسارده رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی نغافتان که پیش پایش دریا ستاره کردی چشمانم قربانش یک قطره ناب سترد رفت و گرد را از دوتیره نیلو فران درما